چاکرای سه، اقدام قدرتمند مکان شبکه خرشیدی، موضوع اقدام قدرتمند صفات مطلوب، سلامت جسمانی، قدرت اراده، عزم، عمل کرد موفقیت آمیز، برای بیشتر مردم قدرت شخصی واقعی دست نیافتنی به نظر می رسد. بسیاری برعکس این را احساس می کنند که بر مسیری که زندگی آنها را می کمی کنترل دارند. آجوم تغییرات همه جا را فرا گرفته است و زندگی مدرن شامل پیچیدگی است که نسل قبلی هرگز تصورش را نمی کرد. ای تفاوت به حجوم فعالیت های انسانی نیروهای طبیعت مانند میلیاردها سال گذشته نقش خود را بازی می کنند. چنین تصویری من و شما را به ذره های ناچیزی تقلیل می دهد که وجودمان هیچ پیامد واقعی در طرح چیزها ندارد. سیستم چاکرا کل این تصویر را جا به جا می کند. قدرت شخصی را در قالب هوش خلاق قرار می می‌دهد که قدرت آن بیکران است به محض آنکه از آن آگاه می‌شوید درمی‌یابید که قدرت شما در آگاهی نهفته است چاکراگ سوم که در سطح شبکه خورشیدی بالای ناف قرار دارد به چاکراگ قدرت معروف است انرژی آن با هر نوع عمل مرتبط است از جمله انگیزی که آن را به حرکت در می‌آورد شرح راه رسیدن موفقیت آمیز به هدفی را که در نظر دارید میداند. کنش موفق تعریف یوگا از قدرت شخصی است. احساس ضعف، تنهایی، انزواب، اهمیتی و حقیر بودن از این منظر جدید غیرواقعی است. این احساسات نشانه قطع ارتباط با منبع وجودی شما هستند. آگاهی سعادتمند فراتر از یک تجربه ذهنی است. شما و جهان را به هم متصل می کند افکار به ویژه افکار عمدی قدرتمند باعث می شود همه چیز خود به خود اتفاق بیافتد اگر الان این ایده را بپذیرید پذیرید شگفت صدقا هم شد اما بهترین راه برای انجام این کار این است که پس از شنیدن این فصل این ایده را در فعالیت های روزمره خود آزمایش کنید اگر جریان هوش خلاق واقعا می تواند چیزهایی را در جهان بیرونی آنجا انجام دهد پس شما سعادتمندی خود را در دنیا به استداح واقعی دنبال می کنید. بدون شک اغلب احساس می کنید که ناتوان هستید اما آنچه در زمان تردید تجربه می کنید مثل ترس و زف در واقع پاسخ شما به دنیا است. احساس ناتوانی می کنید زیرا پاسخ شما ناتوان است. همان پاسخ را ادامه دهید و همان احساس ادامه خواهد داشت. چاکرای سوم می تواند شما را آزاد کند تا عاملی قدرتمند برای تغییر در زندگی خود و همه اطرافیانتان باشید. سعادت باید به دنیا سرازیر شود مانند رسم سخاوتمندانه ی ها، میزبان لیوان مهمانش را پر می کند تا جایی که سرریز شود. چاشرای سوام هیته قدرت شماست. جایی که قصد و تحقق به طور ناخداگاه به هم متصل می شوند. با تسلیم شدن به آگاهی سعادتمند شما آزاد هستید که دیدگاه خود را دنبال کنید و بدانید که هوش خلاق در کنار شماست. هرچقدر هم که رادیکال به نظر میرسد، هیچ چیز امتر از همسو کردن عمل خود با دیدگاهتان نیست. هیته توانمندی مطلق مجموعه خاصی از شرایط وجود دارد که به شما میگوید از چاکرای قدرت عمل می کنید. اینها در مسابقات ورزشی به خوبی شناخته شدند و احتمالا در باره درهیت مطلق شنیده اید. وقتی یک بازیکن فوتبال در درهیت تبانمندی مطلق باشد، هر پاس کامل می شود نبه روش معمولی بلکه گویی به خودی خود اتفاق می افتد. همین امر در خصوص بازی گلف صادق است که از فاصله 150 یاردی توپ را در سوراخ می اندازد. تمام تلاش، تمرین، تنش و آدرنالینی که در یک ورزش رقابتی از بین می روید با مجموعه ای کاملا متفاوت از تجربیات جایگزین می شود. در حیطه توانمندی مطلق بودن منحصر به ورزش نیست و هدف ما در این کتاب این است که آن را به یک تجربه عادی تبدیل کنیم. تقریبا همه شما نیم نگاهی به احساس بودن در هیته توانمندی مطلق داشته اید بدون اینکه آن را به این نام بشناسید این عناصر نمایانگر این تجربه هستند مطمئن هستید که موفق خواهید شد در درون احساس آرامش می کنید اما در عین حال کاملا بیدار و هوشیار هستید همه موانع ناپدید می شوند انرژی را به صورت گزگز در بدن خود احساس می کنید. سبکی وجود را تجربه می کنید. به نظر می رسد که این عمل به میل خود اتفاق میافتد. زمان به احتمال زیاد کند می شود یا حتی به نظر میرسد متوقف می شود. شما احساس سباکباری و شادی می کنید. این نکات ممکن است با زندگی روزمره بیگانه به نظر برسند اما برای بیشتر ما آنها تحت شرایط خاصی تجربه شدند. مانند عاشق شدن. یک بازیکن گیرنده که پاسی بلند و مارپیچ در فوتبال را میگیرد گیرد به نظر نمی رسد شباهتی به روم آکه زیر بالکن جولیت شعر می خاند داشته باشد. اما آنها با آگاهی سعادتمند به هم مرتبط هستند. ما؟ آنقدر به جدا کردن دنیای درون اینجا و دنیای بیرون آنجا عادت کرده این که به نظر می رسد شور و شوق یک فرد عاشق با ستاره فوتبال که به دنبال توپ می پرد متفاوت است. اما در واقعیت تنها یک حیطه ی توانمندی مطلق وجود دارد چه آن را در دنیای درون اینجا یا دنیای بیرون آنجا تجربه کنیم. عاشقی شیفته به اندازه ورزشکاری هرفعی حیطه ی توانمندی مطلق را در اختیار می گیرد. متاسفانه بیشتر ما تجربه بیرون بودن از حیطه ی توانمندی مطلق را داریم. این واقعیت که ما به موانع و شکست ها آدت کرده ایم گواه این است که جریان هوش خلاق را مسدود کرده ایم. بین آنچه واقعا می خواهید و آنچه واقعا به دست می آورید گسست وجود دارد، و باید تغییر کند قرار گرفتن در حیطه توانمندی مطلق قرار بود امری عادی باشد تنها چیزی که نیاز دارد این است که چاکرای سوم باز باشد و به هوش خلاق اجازه دهد تا در آن جریان یابد همانطور که خواهیم دید رفع انصداد چاکرای سوم از طریق استحاله در آگاهی حادث می شود که همیشه امکان پذیر است ioutil توانمندی مطلق را به مالکیت خود در بیاورید. اکنون می دانید که چه تغییری باید ایجاد کنید. پس به هوش خلاق اجازه دهید هر اقدامی را بر عهده بگیرد. اقدام مقوله بزرگی است و هر میزان که شما مسئولیتش را عهده دار باشید، احتمال مواجهه با حوادث، اشتباهات موانع و عواقب پیشبینی نشدنی همیشه وجود دارد آن هنگام که پی می‌برید که آگاهی محض تنها چیزی است که نیاز دارید شرایط تغییر می کند. با ساکن شدن در آگاهی محض در درمی‌یابید که چگونه هیته توانمندی مطلق را به مالکیت خود درآورید شما تا الان با چگونگی احساس آگاهی محض آشنا شده اید این هست شامل آرامش درونی، حوشیاری و آرام بودن است. مهارت در این است که در آگاهی محض باقی بمانید و در عین حال روزی پر از خواسته ها وزایف و حباسپرتی را پشت سر بگذارید. در سنت یوگا، توانایی باقی ماندن با اطمینان کامل در آگاهی محض بسیار ارزشمند است، در حالی که در غرب آگاهی محض تقریبا جایی در زندگی روزمره ندارد. در عوض مدام به ما میگویند که بر اوامل بیرونی تمرکز کنید. اگر به دیدگاه غربی پایبند باشید، کاری که افراد بیشماری انجام می فشار و استراب ایجاد می کند. این امری اجتناب ناپذیر است، زیرا رسیدن به موفقیت مسترزم این است که انرژی خود را در بسیاری از جبه ها پراکنده کنید. آیا واقعا می توانید انتظار داشته باشید که با همه این گذینه ها همراه باشید؟ حفظ نگرش مثبت، تلاش برای برنده شدن به جای بازنده بودن، تقویت انگیزه خود و اطرافیانتان، استفاده از فرصت به هنگام ظهور آن، بلند کردن خود پس از شکست، نشان ندادن ترس و آشفتگی، حفظ روحیه خود و کمک به اطرافیان برای سر آمدن و براوردن و تأمین نیازها به باسته سخت کوشی و کوشش. توجه به همه این نکات برای روش تحقق مبفقیت ضروری است، با اتخاذ این اسلوب به عنوان راه و رسم زندگی موفقیت حداقل در برخی اوقات امکان پذیر می شود. اما یک مشکل اساسی وجود دارد. روی کرد غربی شما را از هیته توانمندی مطلق خارج می کند و به محض اینکه این اتفاق بیفتد افتد قطعا از مسیر فاصله خواهید گرفت. تلاش برای موفقیت شما را در تغلا و کوشش نگه می دارد. در بازی که خاستای بازی کنان فقط برد و باخته است، آن چه در دراز مدت اتفاق می نه برد است و نه باخد. رایشترین نتیجه خستگی و فرسودگی است. بسیاری از مردم خسته و با نگرانی در تقلا هستند، زیرا فکر می کنند این است که باید برای موفقیت بپردازند. مهم است که به علائمی که نشان می دهدد در هیطه توانمندی مطلق نیستید توجه داشته باشید از جمله در محل کار کسل هستید یا حتی از شغل خود متنفرید. زندگی شما بی هدف به نظر می رسد. احساس بیهودگی بر شما غلبه کرده است. فکر می کنید همه ی این اتفاقات چه اهمیتی دارد؟ کاری که انجام می دهید مستلزم تلاش و تقلای طاقت فرساست و انرژی شما را تحلیل می دهد. در حرکت بعدی خود مطمئن نیستید. به راحتی حواستان پرت می شود. متوجه می که بیش از حد تلاش می کنید. در نتیجه نهایی احساس نگرانی و سردرگومی می کنید. مقاومت و موانع را تجربه می کنید. علایم نگرانی مانند گرفتگی و تنش را در بدن خود احساس می کنید و احساس فشار روانی و استراب می کنید. بیایید فرض کنیم که خارج از حیطه ی توانمندی مطلق بودن رایشترین حالت است. مبارزه با علائم ذک شده راه یوگا نیست. همانطور که احتمالا تا به حال می یوگا تنها یک ضرورت را آموزش می دهد، از مسیر خود کنار بروید در آگاهی محض ساکن شوید تا هوش خلاق بتواند غلبه کند سه چیز دخیل است مشاهده کنارگیری یا رهایی و بی‌عملی هر کدام به طور طبیعی به وجود می‌آیند شما فقط باید به آنها توجه کنید و آنها را به بخشی معنادار از فعالیت روزانه خود تبدیل کنید توجه برای ارائه یک تجربه شخصی از این سجنبه آگاهی، مراقبه پایان این بخش را در نظر بگیرید. مشاهده هنگامی که شما شاهد اعمال خود هستید در مقام یک نازر هستید. بدون اینکه متوجه باشند، همه از قبل نازر هستند، اما به روشی نامعین. ما نمی توانیم متوجه کاری نباشیم که انجام می دهیم، خواه این اقدام به اندازه راه رفتن به سمت یخچال بی اهمیت باشد یا به اندازه اداره جلسه هیت مدیره مهم. شاهد بودن بخشی ضروری از خودآگاهی است. این دیدن فیزیکی از طریق چشمان شما نیست بلکه آگاه بودن مستمر از کاری است که انجام می دهید. با این حال اغلب آقات افراد درگیر اعمال ناخودآگاه و اثر عادت می شوند. آنها در کنترل خودکار میمانند و همان رفتار قدیمی فیزیکی، ذهنی و حتی معنوی را تکرار می کنند. عنصر مشاهده رانده می شود. به جای آن عمل مکانیکی غالب می شود. از طرف دیگر وقتی شخصی در هیته توانمندی مطلق است، احساس می کند که بیرون از کالبد الخیش ایستاده است و کارهای خود را به گونه ای مشاهده می کند که گویی در حال تماشای یک فیلم یا رویاست، و در اصل شاهد جایگزین ایگو می شود در حالت مشاهده فعالیت های پیش فرض ایگو دوست داشتن و دوست نداشتن پذیرش و رد کردن محف می شوند نیروی گسترده تر، و قدرتمندتر که هوش خلاق است تسلط پیدا می کند که از آگاهی بسیار گسترده نسبت به ایگو برخوردار است شما همچنان مانند قبل از نیت بخور دارید اما بدون از دست دادن خودآگاهی آن را دارید. به عنوان شاهد شما با وضوح کامل آنچه را که انجام می دهید می بینید. مثل این است که در یک فیلم غرق شده باشید و به هیچ چیز دیگری در اتاق توجه نکنید. کنارگیری کنارگیری به عنوان رها کردن تجربه می شود. وقتی کنار میستید، نیاز به زور، مبارزه، فشار دادن و صرف حد اکثر تلاش را از دست می دهید. اینها ترفندهای ایگو هستند، زیرا ایگو برای رسیدن به آنچه می خواهد از هر ابزار لازمی استفاده می کند. وقتی کسی در حیطه توانمندی مطلق است و در شرایط استثنایی کار در خور توجهی انجام می دهد، پس از آن روایت می کند، کار من نبود، به عبارت دیگر آنها می که در وضعیتی هستند که نیروی بینام و ناشناس کنترل را به دست گرفته است. ایگو به کنارگیری اعتماد ندارد و از آنجایی که جامعه از مجموعه ایگوهای جدا از هم تشکیل می شود هیچ یک از ما جوری بزرگ نشده ایم که ارزش کنارگیری را بدانیم. کاملا برعکس در غرب رهایی با انفعال بیتفاوتی برابر است. تویی در حالی که زندگی در است کنار نشینی را انتخاب کرده باشید چیزی که این دیدگاه نادیده میگیرد این است که رهایی برای زنده ماندن و کار کرد کاملاً ضروری است سیستم عصبی مرکزی توسط فیزیولوژیست ها به دو بخش سیستم عصبی ارادی و غیر ارادی تقسیم می شود سیستم, سیستم ارادی, ارادی شود. سیستم تحت کنترل آگاهانه ماست ما سیستم غیر ارادی به طور ناخود و بدون انتخاب از طرف ما عمل می کند. موضوع در کنترل بودن مطرح نیست و ما به عنوان ساکنان بدن خود در هر صورت نمی توانیم کنترل سیستم غیر ارادی را به دست بگیریم. با فرض اینکه علم پزشکی جدید بتواند لیست همه عملکرد های بدن شما را در یک دقیقه اخیر شناسایی و چاپ کند، این لیست بیش از یک مایل طول خواهد داشت بدون نیاز به مداخله ما هوش خلاق تا حد مجز آساایی در بدن نمایان می شود و عمل کرد های غیر ارادی درون ما هیجان زده می شوند مبنی بر اینکه مجبور نیستند مداخله ما را تحمل کنند متاسفانه با این وجود ما دخالت می کنیمیم ما روزانه خود را در معرض استراب قرار می دهیم که باعث می شود سیستم عصبی غیر ارادی فشار بیش از حدی را تجربه کند. از آنجایی که بدن بسیار سازگار است می تواند خود را با فشار بیش از اندازه مطابقت دهد اما در نهایت بدن هزینه این فشار را با پیری و شروع بیماری های مزمن می پردازد. مذایع مراقبه آنقدر شناخته شده است که نیازی به اشاره مجدد نیست. اما شایان ذکر است که اولین فایده آن برای سیستم عصبی غیر ارادی است. در مراقبه، آگاهی محض را تجربه می کنید و بدن شما حالتی بدون نگرانی را تجربه می کند. این دوره تسکین و آرامش به واکنش شفا بخش اجازه می دهد تا اثرات منفی فشار بیش از حد را از بین ببرد. همین عمر درباره سیستم عصبی ارادی نیز صدق می کند. با مهلت دادن به ذهن خداگاه برای فاصله گرفتن از فعالیتهای مداوم، فضایی باز می شود تا هوش خلاق بتواند وارد موقعیت شود و وضوح ذهنی، توجه متمرکز، آگاهی آرام و گشایش به پاسخها و راه جدید را به ارمغان بیاورد. وقتی تصویر بزرگتر را درک کردید، رهایی مفاهیم منفی خود را از دست می دهد. شما بی تفاوت و منفعل نیستید. در عوض از مداخل خودداری می کنید تا حوش خلاخ به کاری را انجام دهد که برای آن طراحی شده است. بیعملی تمام آن چه در زندگی به ما آموخته پیرامون انجام دادن کار هاست. بنابراین، از همان ابتدا بیان استداه کاری انجام ندادن اگر غیر ممکن نباشد، معادل تنبلی است و مشکوک به نظر می رسد. اگر از انجام دادن دست بردارید، چیزی جز سکون و رکود حاصل نمی شود. با این حال، انجام ندادن در واقع راهی برای افسایش موفقیت در اقداماتی است که انجام می دهید، این نیاز به توضیح دارد. وقتی در حیطه توانمندی مطلق هستید کارهای بزرگی می تواند انجام شود اما این دلیل اصلی حضور در آنجا نیست دلیل اصلی برقراری ارتباط مجدد با آگاهی سعادتمند است تا زمانی که در ارتباط باقی بمانید هوش خلاق به طور کامل عمل می کند و به شما امکان می دهد از دخالت در زندگی خودداری کنید نیازی به انجام کار احساس نمی کنید همه چیز به خودی خود به آرامی اتفاق می افتد. متوجه می که بدون نگرانی، فشار یا توقعات تصمیم می گیرید. انجام هر کاری که دوست دارید منجر به سمر بخشترین و موفق نتیجه می شود. اما انطور که ممکن است تصور کنید، ایگوی شما هیچ کدام از آنها را نخواهد داشت. همه جا پرچمهای قرمز را به نشانه اعتراض به احتزاز در می آورد. اگر فقط کنار بیستید و به این به اصطلاح هووش خلاق اعتماد کنید که احتمالا فقط داستانی از تخیلات عرفانی است چطور امکان دارد جان سالم به در ببرید؟ چه برسد به اینکه موفق شوید ؟ اعتراض ایگو معقول به نظر میرسد اما فقط به این دلیل که ایگو زندگی را از زاویه دید محدود خود میبیند زاویه دید ایگو از آگاهی محض محروم است زیرا زندگی در سطح ایگو تنها به این موضوع مربوط می شود. چه سودی برای من دارد؟ مشغولیت دائمی به خواسته ها و نیازها وجود دارد حتی اگر نیازها ها خیالی باشند. آگاهی محض به این شکل کار نمی کند. مشاهده کنارگیری و بیعملی دستور کار نیست، شما برای رسیدن به آنها اقدام نمی کنید. آنها جنبه های آگاهی محض هستند. آنها به عنوان بخشی از من کافی هستم در شما وجود دارند. برای درک کامل این موضوع به تجربه بیعملی نیاز دارید تا بدانید که بخشی از وجود شماست. همانطور که نیاز به تجربه رهایی و مشاهده دارید. اینجاست که مسیر خداگاهی وارد می شود، تا شما را دوباره به آنچه واقعا هستید متصل کند یافتن مسیح ایگو خودخواهی را در کنار خود دارد که محرک قدرتمندی است ولی هر چیزی که ایگو شما به دست آورد به شما اجازه نمی دهد در حیطه ی توانمندی مطلق باشید. با این حال نمی توان مردم را به خاطر پیروی از ایگو ملامت کرد. آوائی ضعیف ممکن است در خصوص یافتن راه بهتر زمزمه کند اما این راه بهتر به صورت جادوی ظاهر نمی شود. سفری که بر اساس من کافی نیستم باشد با وعده های محقق نشده به پایان می رسد. مهم نیست چقدر خوب تکرده اید. من اخیرن حکایتی اندوه بار خاندم. در یک دهکده اتریشی کوچک در حدود 20 مایدی ویان بیوه یک قاضی محلی تنها در خانه خالی خود نشسته بود. نام او ماریان برت شولد بود و او در سال 1751 در یک خانواده موسیقیدان به دنیا آمد. سالها بود ماریان سال خورده که در کودکی با نام نانریل شناخته می‌شد، سلامتی رو به زوال داشت. یکی از عیادت کنندگان در سال 1829 او را کور، بیحال، خسته، ضعیف و تقریباً بی‌صبر توصیف کرد. اگر عاشق موسیقی هستید، ممکن است بدانید که موزارت یک خواهر بزرگتر به نام نانرل داشت. او یکی از دو کودک مشهور آجوبه در تاریخ موسیقی بوده است. زیرا خانواده موزارت به طور موجز آسا دو آجوبه به دنیای موسیقی تقدیم کرده بودند. نانرل در هشت سالگی پیانیست بسیار با استعدادی بود. او میتوانست به طرز شایان توجهی از بسیاری از بزرگ سالان در کیبورد پیشی بگیرد با این تفاوت که وولفگانگ شگفت انگیزتر بود. در چهار سالگی او شروع به نواختن تمام قطعاتی کرده بود که نان ریل میتوانست بزند اما علاوه بر این او آهنگسازی را از 5 سالگی شروع کرد و میتوانست هر آهنگی که به او میدادند به داه نوازی کند. او می توانست قطعات بلند را با دیدن به خاطر بسپارد و وقتی پدرشان لیوپولد آنها را به تور برد، وولفگانگ آشق اجرای یک ترفند جالب بود. شخصی روی کیبورد پیانو یا هارپسیکورد را با پارچهی می پوشند و کودک آجوبه بدون دیدن صفحه کرید کاملا می نواخد. سخت است که ماریان نابینا و تا لال را با دختری مقایسه کرد که تقریبا عنوان یک نوازنده با موزارت برابری می پادشاهان و ملکه های اروپا تحسینش می و او نیز از هر خانه اشرافی که فرزندان موزارت در آن می نواختند هدایایی مجلل دریافت می کرد. نانجل و وولفگانگ رابطه محبتامیزی داشتند. اگر چه به نظر می رسید که آنها قبل از مرگ زود هنگام و غم‌انگیز ولفگانگ در سال 1786 در 35 سالگی ارتباط خود را از دست داده بودند. نانرل تقریباً 40 سال از او بیشتر عمر کرد، اما پس از دوران کودکی هیچ کس او را در حال نوابستگی ندید. به همان اندازه که شرایطش فوقالاده بود استعدادهای خود را حدرداد و خود را در بند محدودیت ها زندانی کرد. اگر میتوانستیم نان ریل موزارت را به زمان خود بکشانیم بدترین شرایط به طور در خوره توجهی بهبود میافت. در ویان قرن هجده هم زنان نمیتوانستند موسیقی دانه هرفی شوند. امروز نانرل ریل میتوانست به شهرت برسد. جامعه به او حق انتخابی فراتر از اطاعت از پدرش و از سپس ازدواج با یک قاضی خورد پا می داد. بهتر از همه می توانست دوران پیری راحت و بدون نابینایی در اثر آب مروارید یا گلوکوم داشته باشد که هر دو اکنون درمان پذیر هستند انگامی که همه این شرایط ناراحت کننده را بهتر کنید مسیر خود آگاهی امروز به همان اندازه پنهان خواهد بود که در قرن هجده هم پنهان بود استعداد موسیقی حدیه ای از هوش خلاق است اما وزیعت آگاهی فرد را تغییر نمی دهد اگر یک اصای جادوی داشتید و می توانستید هر مصیبت بیرونی را از بین ببرید نمی توانستید کسی را از گرفتار شدن در زندانهای ساخته شده در ذهنش رها کنید آزاد کردن خود از زندان ساخته شده در ذهنتان به خودتان بستگی دارد. گذراندن خود از مرحله من کافی نیستم اولین و مهمترین پروژه شماست. فرزندان موزارت این شانس را داشتند که توسط حامیان ثروتمند بارانی از طلا بر روی آنها ریخته شود. خوشبختی شما در این است که مهم نیست زندگی چقدر با شما خوب یا بد رفتار کرده است. راه پنهان هرگز از شما دریغ نشده است. با تمام خلوصش مثل همیشه در دسترس است. یوگا با امکان پذیر کردن همه گذینه ها چشمندازی جهانی از وضعیت انسان ارائه می دهد. مسیر پنهان زمانی فعال می شود که با آگاهی از جایی که می بروید یک چشمنداز را دنبال کنید. در اینجا دیدگاه یوگا در قالب کلمات به افراد تعلیم داده می شود چشمدازی که می توانید با آن زندگی کنید معار واقعی موفقیت شادی است بودن در هیطه توانمندی مطلق طبیعی است بیداری فرایندی دائمی است واقعیت شما در آگاهی شما خلق می شود زندگی، میدانی از احتمالات بی است. هر روز باید کامیابی بیشتری به همراه خود داشته باشد. تلاش و مبارزه غیر ضروری است. راهی برای خروج از درد و رنج وجود دارد. هر چاکرا استحاله جدیدی از آگاهی سعادتمند را نشان می دهد. اکنون به سطح عملی رسیده ایم که سعادت مندی را به دنیای روزمره خانواده، دوستان، کار و روابط می آورد. مهم نیست که دنیای بیرونی آنجا چه خواسته هایی از شما داشته است. شما می توانید بر اساس دیدگاه خود زندگی کنید. اجازه دهید چشمنداز را به برنامه عملیاتی تبدیل کنم تا بتوان طبان از همکنون های روشنی انجام داد. هر روز گامی به سوی تعالی و تحول بردارید. پویایی زندگی راز نیست. همه ما تحت تاثیر تغییر هستیم. تغییر به خودی خود بیمنیست. سنگی که در عناصر باقی مانده است، در نهایت توسط باد و باران به گرد و قبار تبدیل می شود، حدود دو میلیارد سال تور کشید تا عناصر اساسی در یک سنگ همراه با عناصر باد و آب راهی برای تکامل فراتر از آشوب پیدا کردند. راه هر چیزی است که ما آن را زندگی می نامیم. زیرا موجودات زنده از مواد خام سیاره زمین برای تکامل استفاده می کنند، تکامل و حرکت به سوی تعالی است که آشوب و بی را شکست می و به عقب می راند. این امر میلیاردها سال پیش صدق می کرد و امروز نیز در سطحی بسیار بالاتر صادق است. انسانها می توانند آگاهانه در مسیر تعالی و تکامل قرار بگیرند، مهم نیست که چقدر ابزارهای شگفت انگیز می کنیم و اکتشافات باور نکردنی انجام می دهیم که همه آنها نشان دهنده پیشرفت هستند تکامل از آگاهی شروع می شود همه چیز از تحول شخصی و انتخاب برای تحول هر روزه شروع می شود امروز می توانید با انتخاب هایی که بر بی آشوب و ناکار آمدی قلبه می کند، تحوال ایجاد کنید. در اینجا چند نمونه هستند. گامی برای کاهش دلهوره در خانه یا محل کار بردارید. محیط اطراف خود را آرام و منظم کنید. از انجام کاری که می برای شما خوب نیست، دست بردارید. شروع به انجام دادن کاری کنید که می دانید برای شما خوب است. به زندگی درونی خود اولویت بدهید. یک منبع الهام پیدا کنید. ارتباط خود را با کسی که شما را سر شوق می آورد دهید. ارتباط خود را با کسی که شما را دل سرد می کند یا با شما بدرفتاری می کند کاهش دهید. به سر شوق آوردن و روحی دادن به شخصی دیگر کمک کنید آنتروپی را معکوس کنید. زندگی قرار بود به آرامی بدون کشمکش و مقاومت جریان داشته باشد. وقتی با کشمکش و مقاومت رو برو انرژی تخلیه می شود که در فیزیک به آن آنتروپی میگویند. اگر انتخاب هایی انجام ندهید که انرژی شما را تازه و نونبار شده نگه دارد، تسلیم آنتروپی شده اید. همه می دانند که وقتی یک موقعیت یا فردی آنها را در سطح عاطفی تخلیه می کند، چه احساسی دارد؟ با این حال، تخلیه انرژی فراتر از روابط با کیفیت بالاست و فراتر از یک روز پر مشغله است که باعث می شود شما، احساس خستگی و فرسودگی کنید آسیب واقعی این است که اختلال مخالف تکامل است شما نمی توانید زمانی که درگیر دور نگه داشتن بی نزمی و هرج و مرج هستید زمانی که در تلاش برای گذراندن روز بدون خستگی هستید و زمانی که دلهور ثابت و حتی نگرانی سطح پایین است تکامل پیدا کنید در فیزیک، آنتروپی به معنای روی کرد طبیعت برای پراکندن گرما و رسیدن به سطحی یک نباخت به کار می روید. اما در روابط انسانی ما می خواهیم هر روز انرژی تجدید شده در سطوح ذهنی، احساسی و فیزیکی داشته باشیم. برای کاهش آنتروپی و تشفیق به تجدید انرژی در اینجا چند پیشنهاد وجود دارد. حجم کاری خود را در محدود راحتی خود نگه دارید. هر یک ساعت برای نرمش و حرکات کششی زمان بگذارید. هیچ فعالیتی را در حد احساس خستگی انجام ندهید. چندین بار در روز بنشینید و به طور مختصر استراحت کنید. به قهوه یا سایر محرک ها وابسته نباشید. روی خواب کافی تمرکز کنید که در صبح احساس شادابی کنید. از موقعیت هایی اجتناب کنید که به طور مشخصی منجر به مشاجره می شود. از همه اعضای خانواده بخواهید که کارهای خانه را به اشتراک بگذارند. با قبول مسئولیت کارهایی که شخص دیگری باید انجام دهد به خودتان آسیب وارد نکنید. هر فعالیتی را که کسر کننده، تکراری یا نچندان جالب است قطع کنید. در حالت ایدئال تا جایی که میتوانید چنین فعالیت هایی را به حداقل برسانید. کاهش نگرانی را جدی بگیرید. از افرادی که باعث میشوند احساس خستگی کنید، دوری کنید. به خواستگاه خود متصل شوید. هر که انجام می دهید، خلاق به آن جریان می آبد. خلاق در خواستگاه قوی تر است. بنابراین، اقدامات شما هر چه که باشد باید شما را به خاستگاه و منبع متصل کند. هرگاه امیغن در چیزی غرق شدید، این نشانه متصل بودن به منبع است. فعالیت خلاغانه شما را به خاستگاه متصل می کند. مراقب نیز همین کار را می کند. فعالیت مغز در هر دوی این فعالیت ها بسیار مشابه به نظر می رسد. هر زمان که احساس سعادت، تعالی، سرور و شعف یا خلسه کردید نشانه دیگری است. برای این ساحت آگاهی ارزش قائل شوید و در آن بمانید. ذهن فعال تماید شدید به محرک های بسیار حساس دارد. هر گونه حوازپرتی منجر به اختلال در وضعیت تمرکز آرام اما پر حرارت متصل به منبع می شود. هدف شما هر روز باید تلاش برای نزدیک شدن به منبع باشد. در اینجا چند پیشنهاد برای راهنمایی شما وجود دارد. در آن واحد روی یک موضوع تمرکز کنید. سعی نکنید چند کار را با هم انجام دهید. اگر متوجه شدید تمرکز خود را از دست داده اید، درنگ کنید و با چشمان بسته چند دقیقه استراحت کنید. هر روز برای انجام کاری خلاغانه زمان بگذارید. در خصوص آنچه به واقع شخصا برای شما شادی میابرد فکر کنید و برای آن زمان بگذارید. مراقبه یا یوگا را به طور منظم انجام دهید. برای قوت برشدن در زیبایی طبیعت زمان بگذارید. از دیگران بخواهید که برای بخشی از روز به شما زمان بیوقفه بدهند تا بتوانید فعالیت متمرکزی را انجام دهید. گوشی هوشمند خود را حداقل به مدت نیم ساعت در روز در طول فعالیتهای متمرکز یا خلاقه خاموش کنید. به فعالیتی که ذهن شما را تنبل و منفعل می کند مانند تماشای تلویزیون روی مابل فابسته نباشید. توانمندی خود را توسعه دهید درخواستگاه شما گستره توانمندی بی نهایت وجود دارد انسان ها از یک هستی و بودش بیکران لذت می زیرا امکانات زندگی هرگز تمام نمی شود اما فشارهای داخلی و خارجی برای محدود کردن شدید توانمندی ها وجود دارد که هر کس قادر به تجربه آن است. جبر برای سازگاری، میل به هم رنگ جماعت شدن، احساسات سرکوب شده و تفکر گروهی تأثیر بازدارندگ خود را اعمال می کنند. یک فرد معمولی ممکن است سالانه چهل قطعه موسیقی را به اندازه فرانس شوبرت نسازد یا با مجموعه 1093 پتنت توماس ایدیسون برابری کند و یا حتی 2000 اثر منتشر شده بنویسد همانطور که والتر و ده ها نویسنده دیگر در تاریخ انجام دادند. اما هوش خلاق برای گسترش، جستجو، دانستن و کشف وجود دارد و با وسواس متفاوت است که با تکرار منجر به فرسودگی و عدم احساس لذت می شود. گسترش روزانه توانمندی ها به زندگی نشات می بخشد. جهتی که انتخاب می کنید به شما بستگی دارد. چند پیشنهاد برای راهنمایی نمائی. متعهد به انجام پروژهی چالش برنگیز طولانی مدت مانند یادگیری یک زبان خارجی شوید. خود را در معرض ایده های چالش برنگیز قرار دهید. در فعالیتی شرکت کنید که مرزهای شما را گسترش می دهد. مانند کارهای اجتماعی یا خیریه. در کارهای دافتالبانه شرکت کنید که به عنوان مثال شما را با افرادی در تماس قرار می دهد که از نظر نشاد، تحصیلات یا طبقه اجتماعی با شما متفاوت هستند. برای کسب مدرک کالیج یا درجه عالی اقدام کنید. به یک پادکست گوش دهید یا در یک سخنرانی شرکت کنید که بزر علاقمندی تازه را می کارد. گفتگوها را از شایات یا تبادر نظرات بیهوده دور نگه دارید و موضوعی واقعی را برای بحث مطرح کنید. فردی را بیابید که بتوانید جرفترین افکار و احساسات خود را با او در میان بگذارید. پروراننده شوید. همانطور که میبینید داشتن چشمنداز و انجام هر روز آن بالاترین و بهترین استفاده از فعالیت هاست، و جریان هوش خلاق را زنده نگه میدارد. ما نمی توانوانیم با مشاهده از بیرون بفهمیم که آیا حیوانات زندگی پر جنب جوش و شادی را تشربه می کنند یا خیر. به نوبه خود آنها نیز نمی توانند تشخیص دهند که چگونه انسانها از هستی و بودش بیکران خود جدا شده با این حال، اصل ما که ما برای تجربه هستی به عنوان چیزی دائما پویا و تکاملی طراحی ایم. رشد شخصی یک توانایی منحصر به فرد انسانی است هر روز از این توانمندی استفاده کنید در هیئت توانمندی مطلق خواهید بود و با هوش خلاق به عنوان روش عادی زندگی خود قدرت خواهید گرفت فعال کردن چاکرای شبکه خرشیدی این چاکرا هر جنبه ای از کنش را تقفیت می کند به ویژه ارتباط بین قصد و نتیجه را. چند نمونه که می توانید به طور کلی برای هر چاکرا انجام دهید. در آگاهی محض ساکن شوید. تنگامی که متوجه شدید نیستید چند دقیقه زمان بگذارید و خود را متمرکز کنید. بر منترای رام مراقب کنید. بر فکر متمرکز من قدرتمند هستم یا من توانمند هستم مراقب کنید. سایر مراحل به طور خاص با هدف فعال کردن چاکرای قدرت شما انجام می شود. یوگا در خصوص چگونگی تحقق خاسته ای در سطح قصد بسیار واضح است. شما از حالت میل بی پایان ایگو عبور می کنید که با تکرار تجارب دلپذیر از گذشته، هموار شما را مشغول نگه میدارد. این وضعیت همیشه چشمندازتان را محالود و مبهم می کند و دید شما از آگاهی جرفتر مسدود خواهد شد. به گفته یوگا در پس پچپچهای ذهن، داشتن قصد میتواند از طریق محارتی به نام سامیما، با تحقق قصد مرتبط باشد این استداه سانسکریت برای اتصال یا به هم پیوند دادن است در این حالت شما قصد و نتیجه ای را که حاصل می شود به هم متصل می کنید سامیما شامل 3 جزء است که در یک جزء ادغام شده اند هر سه در فرایند تفکر عادی شما بدون داشتن قدرت زیادی وجود دارند قدرت از عمق بخشیدن به فرایند ناشی می شود. هنگامی که به لایه هایی از فعالیت سطحی ذهن می روید، به آن سامادی می گویند. هنگامی که قصدی قوی در ذهن دارید، به آن دهارانا می گویند. هنگامی که متمرکز می و منتظر هستید که اتفاقی بیفتد به عنوان دیانا شناخته می شود. از استداحات سانسکریت که بگذاریم نکته مهم این است که سایاما به اندازه تفکر و تمایل روزمره شما طبیعی است. اگر ویلانسل می نوازید یا می توانید سوفله شکلات خوب درست کنید، شما به سطحی از آگاهی می روید که این مهارت وجود دارد با توجه متمرکز در آنجا ساکن میشوید و مشخص می کنید که میخواهید چه کاری انجام دهید؟ ماهر بودن در سامیا ما به طور طبیعی از آگاهی محض نشعت میگیرد و می توانید از طریق تمرین بیشتر مراقبه مانسرا آن را ژرف‌تر کنید سطحی از آگاهی که می توانید به آن نائل شوید سامادی است که احتمالاً بزرگترین چالش را پیش روی شما قرار می‌دهد شما نمی توانید فقط به خودتان بگویید من می خواهم ژرف‌تر بروم فقط گفتن کلمات کافی نیست. هیچ تجربه حیرت انگیزی وجود ندارد تا زمانی که سامادی در آگاهی شما چنان جرف شود که زمان و ایگو ناپدید شوند و شما بسیار نزدیک به سکوت ابدی در بنیان و شالوده آگاهی قرار بگیرید. با پیروی از چند نکته می توانید در سامیاما بهتر شوید. یک یا دوبار در روز، زمانی را برای مراقبه منترا که پانزده تا 20 دقیقه طول می کشد اختصاص دهید. در پایان یک مراقبه رضایت بخش آگاهانه چیزی را تجسم کنید که دوست دارید اتفاق بیافتد. سپس آگاه باشید که این قصد چگونه ممکن است عملی شود. در فعالیت وقتی لمحهی از ذهن آرام را تجربه می کنید به جای اینکه اجازه دهید بگذرد در آن قرار بگیرید. هنگامی که بدون تلاش وقایع نیک به سراغتان میآید به آن توجه کنید و در سکوت بگویید این جواب میده یعنی مسیر خود آگاهی با خودتان راحت باشید چه در حال تجربه موفقیت باشید یا شکست بار مسئولیتی بر دوش شما نیست اوش خلاق به بهترین شکل ممکن از طریق شما کار می میکند آنقدر مشتاق نباشید که بدون بال خاستها و تمایلات ایگو باشید هر روز کمی استراحت کنید قدردان دنیای طبیعی باشید هر زمان که دمی بی مشقله برای لذت بردن از این تجربه دارید در درون خود ساکن شوید